الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآل طيبين فاضلين المعصومين نلعن دائمه على اجل المجمعين اللهم افسح لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين بحث درباره نجوم و متعلقات اون مسئله بود در اصنا صحبت ادهی از بزرگان که میخواستن تایید بکنن مثلا تعلوم نجوم رو یک مقداری که انسان یاد بگیره خب تمسک میکن به روایاتی که یا کن و تعلوم علم نجوم الا ما فی بر او بح در مقدار که مثلا انسان از ظاه نجوم راه ها رو پیدا بکنه در دریا یا دیر دریا و اینا تمسک کردن که چون در آن آیاتی هست که راجبه نیم و علامات اینا به نجمه و اینا هست اینا تمسک کردن به عدی از این روایات و آیات در این که علم نجوم اشکال نداره معرفت این نجوم و سیارات رو حتی معرفت تأثیرهای اونها هم تا یک حدی با اسناد اون تأثیر الالله اشکال نداره یکی از این موارد چون نمیخواستیم وارد بشین چون از بعضی صحبت شده. اون روایاتی است که ازدواج و نکاح در قمرفل اغرب است و اگه عمل اغرب باشه ازدواج نکنه چون لم یقل حسنا خوبی در اون زندگی نمید اما این حکم مشهور است که تا اونجایی که من میزنم اجباهی باشه در مخالصه شده باشه یه روزی ما تصادفه این یک موردی بود از این یمنی بود آن پیش ما که ازدواج یک خانم اراغی رو آخرای خروج از قناند من چه می‌خوام شک بشن که همرا بشم گفتم من زمال در اول در آخر ما خودمون همون یه روزه بود بعدم طلاقش داد این من اون که چه جو چه دیگه خیلی عجیبه من واقعا کب ازدواج بدم ترکی زویی یه روز بلا فاصله گفت که طلاق می‌خوام هرچند من خسار کردم شخصا بخاطر اون یه فایده نداره درازن چی حالا این بحثه چون قمر در هم معلوم میشه شناختن نجوم و بروژ اشکال نداره و هم معلوم میشه تأثیرهای داره ازدواج در قمر در اغرب خب این بحث ازدواج در قمر در اغرب در, اغرب در کتاب مرموم وسائل و بعدم در جامال احادیث کتاب های متعارق و حوضبی ماست در دو بحث آمده یکی تو بحث سفر آمده یکی هم تو بحث ازدواج شون این روایت توی سفر هم هست تو ازدواج هم هست در دو جا آمده و در کتاب جامع الاحادیث در کتاب النساء توی اون چاپ قبلی ما جلد 8 به مناسبت حج اومده و در جلد 14 هم به مناسبت نکاح در جامع الاحادیث در جلد 18 هم آورده که آدرس من اونجا مراجعه کردم که زدم نکردم اما داده ابواب سفر بله. خب، اگر کجا روشه؟ اونجا گذاشت. در این جلد شماره 25 از کتاب نکاح، چند روایات در نکاح بیشتره. حالا من بحث مسافرتم می‌خونیم اینجا. چند روایات نکاح بیشتره وارد این بحث می‌شه. این مقدار ببینیم آیا واقعاً حکم ثابت میشه که از متأخرین به این تمسک کردن در این روایت در کتاب جامع الحدیث عنوان ابوابش ابواب تجویج باب 41 از این ابواب من قرارن عرض کردم مرحوم سا... جامع الحدیث هم بر ما بولی منهج ورعش کتاب رو مثل وصایل قرار دادن این اینطوری ابواب داره بعد باب. باب داره عنوان ابواب میشه مثلا ابواب رکوع بعد ابواب رکوع رو مثلا 30 باب می‌کنه احکام رکوع در ضمن 30 باب یه یک روش خاصیه این ترتیب مثلا ممکن است مثلا در کتاب, رو کتاب روکو بوده یا پس کنک روکو بوده یا مثلا ار بوده اینطور نبوده که ابا این منحج صاحب وسائله که اصلا در بهار ما این منحجه نداری این منحج صاحب وسائله که به اصطلاح خودشون یک جامعه اقواب داره بعد باب باب داری مهمای گروه هم همین روش وسائل رو گرفتن در احادیث، و ولذا مثلا ما میگیم عبواب باب چند این اصطلاح عبواب باب چند رو ما به لحاظ احترام صاحب وسائل و آی برو جلدی باید این تنمیه هم نید خیلی عبواب قرار بزن ممکنه بود که مثلا یک رکوع دو سجود شماره بزنیم مثلا. الان این طور دیگه از رکوع سجود ممکنه پس باید بگیم ممکنه که تا حالا به هر حال ایشان این راه رو پیش رستن مرام برو جلدی الان ب در عباب تزویج همین جلد بیست این چاپ دومه کتابه که بنا نهبو و باز با چاپ اول در شماری مجلزات هر بود این روایت روایتیست این مضمون منتظر و جلال غمر و تل اقرب لمیه حسنا خوبی نمیدینه حسنا خوبی شبیه به اصلا اسمه سر این روایت به لحاظ حالا قیل است. جهت به اصطلاح فقهی من نام خیدم والا جهت بعد میشم مسادر قدیم فقهی به لحاظ روایی و کتب روایی ما که داریم بعد این ترین مخصری که راجع به این روایت داریم در کتاب محاسن برغی که بعد سندشو میخونم مرحوم برقی در محاسن این روایت رو خوب دقت کنید مسن روایتی رو که بروی آورده من سافر او تزوج دو تا داره یکی سفر کی زواج و روایت هم محمد بن همران انا ابی عبدالله یکیه بحث سرش انجام میدید اما متنش این محمد بن همران انا ابی عبدالله اینجوریه من سافره او تزوج و الزم حوالقل اقرب نمیاره خطاب این اولین متن حدیثی که ما داریم در کتاب محاسن آمده. بعد از ایشان در کتاب کافی مرحوم کلینی آورده یکی از عجایبی که ما در خیلال این بحث نجوم چند بار از کردیم هر چیلی در تنجیه مرحوم صاحب کنید در روزه کافی آورده اینم در روزه کافی آورده اینم خیلی عقیقه مثلا روایات نجوم رو نه در باب سفر آورده نه تو باب آورده. نمیشه انجام بشه. تو روزه هندها رو تو هم روزه هست. اینم تو زاجیه بکاری. علاوها مربوط به کلینی در کتاب روزه با یک اختلافی که یک نقطه هنیه لطیفی داره، انشالله عرض می کنم. در کتاب کافی، در کتاب روزه که از به های اعتبار در رژی دوستیشون هم از برگی نهایت کرده با همون نه. من سافر او تازه میشه. مثل هالیسو عرض کنم. بعد از مرحوم کلینی مرحوم شیخ صدوق در فقیه مرحوم شیخ صدوق در فقیه هم شبیه کار وسائل دو بار امرده این حدیثه. یه بار توی سفر بمناسای سفر توی حج که جلد, جلد دوی من لایعظه اول فقیه یه بارم در جلد سه در باب نکاح امرده سندن یکیه در صدوق سند یکی ما هم سرشی میفهمیم واقعا چرا صدوق این کاری کرده؟ من نفهمیدم واقعا بینیم و در کتاب حج شده من صافر و اوتذر وجه آخر در کتاب نکال داره من صافر و اوتذر وجه صافر رو یکی میکنه اون سافره رو یه حرف کرده این محن حدیث رو دوبار آورده یکی سافره و اوتذر وجه یکی با تذر وجه تنها این هم کاری که مرگومه شیخ صدوق فرمونده البته حالا وارد بحث فقیه نیمیشم فقیه و این در رو میذارم برای برمیشم بعد از مرموم شیخ صدوق در این مسادلی که ما داریم مرموم شیخ توسی قدسان لاسره در تحضیح در باب نکاح ایشون هم دو مرحله رو گرده این هم چیز عجیبیه و مسترش هم ظاهرا یکیه لکن هم در سندشه که با هم فرق هم دارن اما در هر دو موردی که این مرموم شیخ توسیده منتظر وجه یه سافره توش نداره پس تا اینجا معلوم تو که این حدیث مبالک داریم کتب عربه ایما سه تا متن داره متن کلینی من سافر و اوتذر وجه مثم تحضیب منتظر وجه متن فقیه هر دو یک جا سافر و وجه و یک جا منتظر وجه و با یک سنب هیچ فرق نمیکنه فقیه هر دو رو در دو با برد یکی باب سفر مناسبه هشت یکی هم در باغ نکاح این اجمال این روایت در مسادری که ما الان داریم البته مرحوم صدوق غیر از کتاب فقیه چون فقیه کتاب فتوایی ایشونه غیر از کتاب فقیه به مناسبت دیگری مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه به کتاب دیگری این چون اون در این جلد جامال حاضیت هست شما به این جلد آسانه در این این که الان دارم صفحه سال این در صفحه دیویست همین همین مجلد جامعال احادیس همین جلدی دست منه به لحاظ عبراب عبراب مباشرات نسا باب دو حدیث چهارده عبراب مباشرات نسا من اونجا از کردم و بوس مضمون صدوق در عیون اخبار رضا و در اعلن خودش این رو داره یک حدیثی آورده به این مضمون این حدیث در بقیه مصادر از نیست کلا این به عنوانی که ایشون آورده نیست فقط منحصل به شیخ صدوق محمد بن احمد سنانی محمد بن احمد سنانی ظاهرا جزو مشایخ قومی صدوقه قومی کجایی صدوقه که از نبادگان و از خاندان محمد ابن سنان معروف هست سنانی به اونجه هردش میگن نمیشنسیم آله حده سنان محمد ابن عبی عبدالله کوفی حرست کردیم که در زمان نباق عربعه شخصی به نام محمد بن جعفر اسدی که از بنی اسد بود و عرب سمیمن بود عرب عصی بود ایشون آمدن ساکنه ریشون برای نشت تشیع و دعوت تشییع و ری و ده از علمان خدمتیشون رسیدن برای مقل حدیث مرد بسیار بزرگواریز خیلی جرد خیلی و خیلی هم تأثیر داره چند تا روایت ما از ایشانه یکی ای جمعی روایت زیاد جامعه کنگیره منحصرن از ایشان به ما رسیده و مرموم صدو رزوانو لا تالا علیه خودش خب نبود نبوده اما توسط ایده از مشایخ قم با ایشان ارتباط پیدا کردن یعنی از احادیث ایشان رو توسط ایده ای. سه نفرن بازجا چهار نفرن یعنی بازجایی دو نفرن سه نفر اینجا یک نفرن بعضی ازن تا سه نفر رو بزنیم بعضی از تا چهار هر چهار تا یا سه تا یا دو تا یا یکی همشون جزء مشایخ در این دوسن هیچ کدومشون نمی‌شاسین یعنی مرحوم صدور از مشایخ قم از کسی از مشاهر و از ایشان نقل بکنه نداریم این البته نه به خاطر حالا مثلا زعف بوده احتمال میدنیشون شرایط تغییر زندگی میکنه احتمال قوی میدن چون ایشون مستقیمن با نایب دوگم و ظاهرن سوم ارتباط داشته اگر قرار سلطه برو راه پیدا میکرد برای خود و اون به نقابه مشکل درست میکرد ظاهرا اینطور باشه به هر حالی که از کار، و این جلالت قلبی که ایشان داره و در ری بوده از مشاهیر قوم خدمت ایشان نرسیدن ولی بله کلی ازش نعم می‌کنه مگر مشاهیری که بخواد مرحوم صدوق از اون نعم بکنه کسانی که صدوق از اونها از این شخص نعم می‌کنه همشون بلا استثنا مشغولند یعنی ما راجع معرفت نداریم به که استاد صدوق محمد نعمی عبد الله کوفی قال حدثنا سحلب بن زیاد که خوب این معلومه که از بزرگان ری بوده و معروف به محل کلام ما از کردیم کذاب نیست که حالا معروف نجاشی نوشته در کتابش از قوره احمد اشعری اما به هر حال چه تمل داره انا شعزاد عبدالعظیم بن عبدالله حسنی همین گفت معروف شاهزاده اردلدی شاهزاده سیده هست نه شاهزاده چون در اون زمان به 사ادات شاه میگفتن یا میر میگفتن یا امیر میگفتن یا سنی‌ها شریخ می‌گفتن حالا ما می‌گیم سید اون وقت نمی‌گفتن انا عبدالعظیم از عبدالله حسنی قال حدثني علی ابن محمد بن عسکری ایشون از امام عسکری که اینجا مراد امام هادی است حضرت ابوالحسن صالح ان ابي محمد بن علی که دیروز شهادت ایشون بود حضرت جواب. ان ابي رضا علی ابن موسی ان علیه جعفر ان ای این, این مقدار آمده به تصریح نشده که این حدیث به رسول الله مثلا قال یک رحول رجل انیوجامه این توی متون مختلفی آمده پیش ما به اهل سنت نزید میخواب انیوجامه فی اول ویلت من و فی وسط و فی آخری تا الان قال و قال علیه السلام، این قال علیه سلام نمیدونیم چیه احتمال داره مراد امام حاضی باشه احتمال داره. این در ذهن سوم باشه که بعد خنده جیغی کنیم. من تازه و ور تا مراسله اقرب لمیرن این یه توش سافره نداره. آویشش نه گن صوری در زواجه. زواج عرضه زوجیه. آویشش تو مسلا کس بنوایدیم؟ مرحوم صدوق در اون اخبار رضا و در کتاب علل این رو با این سند از حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه نقل کرده که واقعا سر سهر بزرگ و آیستان خصوصیات حقش خصوصی دیارت کم مشرف دید. خیلی کم. حلای حالا منتظر وجب الخمر و فل اقرم لم یرال حسنا همزون به لحاظ سندی سند مشکل داره استاد صدوق توصیح نشده سرلبن زیاد مشکل داره لیکن به هر حال معلوم شد اصلی داشته حالا قبول بکنیم یا نکنیم اصلی داشت این حدیث که چون اسم صدوق رو بردن مثل این راهی نیستی در فقیه نرکده فقیه از راه دیگه در فقیه از راه محمد نهمران همران کرده و سندش در هر یکی یکیه یکی صافره و وجهه که تزوجه تنها معلوم شد تزوجه این دنها این بیشتر مایه داره این به یک طرح کلی حدیث و اما از در حدیث تفسیدن در این باب صفحه 151 از این جنده 25 ایشون متن محاسم رو نیابرده شما هم شاید مراجعه بپنید بگید اما من اسم محاسم رو بردم اسم کافی رو بردم نه متن کافی رو بردم نه متن بردم نه متن کتاب محاسن نقل کرده نه از کتاب کافی سرش اینه که در اون کتاب ها سافر اوتذر وجه است این تو عباب و آورده اند به نظر عباب و تو معایش آله یادانتو هج که کتاب معایشش بود و از کند در کتاب محاسن و در کتاب کافی در روزه کافی من تذر تنها نیامده من سافر اوتذر بود برای اسم محاسم و کافی رو در این جالا نمیبینی سرش اینه اما در این کتاب امتا خوب بودیشون از حلوق میابردن بعد از مرمومه اصلا قرباتی که داریم و بدین چاک کردن در اینجا از تحضید اینطور نوشته من برای اینکه این کارها روشن بشه نشه تحضید 400 هم 7 این 600 هم شماره سفه هست یعنی جلده 7 و اکسی مثالا نوشته. متعارف سن 7 مثلا یه خط تیره 400 حرفیشو chapter اول صفحه اول 400 حرف یه ده و بعد که نسخه فرغمیاره میگه تهذیب 461 یه ده از عسکری در کتاب تهذیب دو بار این حدیث آورده این بار تو اول ازدواج هم صفحه 400 هفتو ازدواج هم. یه بار تو 461 که ابواب و زياداته حالا اینش مهم نیست پای صدوق میاد شیخ طوسی میاره عسکری در یکی از مشکلات شعر توسی همینه که ایشون میگن بزرگان مثل محبوب صابقهداه که سالاً توضییهزی که شعر توصی گاه خراب میکنه از جا سران خراب میکنه ا خراب میکنه زیادی میکنه نقیسه میکنه چند دقین بحث من مص کرده به تخراش میکنه. یکی هم اینجاست جا یکی از اون جایی که شعر توسی زیادی کرده و نقسه در اینجاس که یکی ای از شکالات به شر توسی در واقع که من میخوام توضییه شده بدن. ایشون اینطور طور نوشتن. احمد و محمد ابن ایسا ان علی ابن اثبات ان اسماعیل منصور ان ابراهیم پسر محمد نهمران، همران ابراهیم و محمد ابن همران ان ابی عبدالله روشن شد این پس احمد اشعری از علی ابن از اسماعیل ابن منصور که علامانه نمی کیه از پسر محمد ابن نه. اما این در صفحه چهارسد در صفحه چهارسد و شسته بار گفته احمد ابن محمد ابن ایسا خیلی عجیبه این همون اسم بلا فاصله احمد ابن محمد ابن ایسا ان اسماعیل ابن منصور علی ابن اصفات حض شد خیلی عجیبه یعنی انسان تعجب میکنه چطور شیف در یک کتاب واحد فاصله هم حدود 50 مثلا 14 حدیث مثلا. در اون جلد هفت در صفحه 14, 14 ش علی ابن در اصل هست در این مورد دوم علی بن نیست مستقیماً تو اسماعیل بن دیگه اسم علی بن اسفاط نیست یک علی بن هست در متن حدیث هم در صفحه چارسده داره منتظر بجه مرافل اقرم در صفحه چارسده هم داره منتظر بجه امره, داره. امره هم در مره در یک مورد هست در مورد نیست حالا مشکل کجاست اگر مسترش دو تا بود باز احتمال میدادیم مشکل این که در هر دو افتضاع کرده به احمد محمد در هر دو مورد احمد ابن و محمد نگیسا و در این دو تا حدیث در متن و در صند زیاد و نقیصه داره در متن یکی از علی ابن توی نیست این توی یک هست یک مطم دیگه نیست تصادفه این زیادی صند که مطمش زیادی داره صندش کم که صندش در داره مطمش کم داره, داره, داره. شیخ توی این کارش کمی واقعا تعجباوره خوب خیلی از کلی مرموم صاحب اهدای عبارت تون داره خلی ما تو جد روایتون این در شیخ از زیادت اول نقیصت اول تحریف اول تصیف سندن اون محنه که خیلی سنگین این عبارت شیخ و طائف گفتن مثل بعضی این سنیای کتابی هست اصول مذره امامی که سجل در ردی چیه سرکن خیلی زحمت جمله در شدت تهاجوز رباط شیعه به شیخی که تعصب شده تو صیغه ده زنه بازم ظاهری اباضی صبا ده نه نبود فقط خودش اینقدر نیدین ولی این, این خیلی آوریزیه مصاف بین یا بین الله شیخ خودت‌ها فی حدیث درست نه نکنه میگه خیلی کمه رباطی که پیش شیخ یاد زیاد نکرده باشه یا نخت نکرده باش یا تصیح نکرده سی یعنی لفظ رو جابجا از جا اصطلاحاتشون مثلا مثلا حریز رو جریب بیدیم مثلا حسن و حسن بسراب نقطه ها جا به جا بشه و تحریف هم که یا بردار یا بگذار یا چیز بکنه کلمت خرام بکنه مثلا جعبر هرس بکن این تحریف تحریف نقطه جا به جایه جا نقطه رو تحریف مثلا گفت, گفت پنده احرار دامن نگرفت ای به تحریف تا قیامت هر هر یعنی خر مرادش یاله که پنده احرار نگرفت تحریف هر میشه خر عاصم حضور با سوالتون این مرادی که از تطبیقینه تحریفم که از توضیحا هست حالا اینو با چه کار کنم انصافش خب بیننده‌ها مشکل داره هم واقعا نمی‌فهمم با بعد زبان اما از اون طرفم خب این تصور راجبه شیخ و طارفه که این قد مثلا کدوی نکرده گیج باشه مثلا علیه از سر بندازه یا چیزی اضافه بکنی یا اضافه بکنه بندازه انصافا چه هم بی پایده واقعا کار شیخ نمی‌کنه به عقلل شیخ هم نمیخوره. این احتمال هست که به هر حال مصدر شیخ دوتا باشه ما یه توضیحات کافی ارز کردیم شیخ به خاطر اینکه که بحث حجید خبر رو مطرح میکنه و بحث رو میده جهات رجالی چون تا اون وقت اصحاب ما رو جهات فهرستی کار میکردن و نسخ شناسی شیخ یباشاش بحث رجالی رو مطرح میکنه لذا کارهای فهرستی در تحضیح کمه خالیجاست مثلا میگه در فلان نسخه این رو مثلا اینطور میگه شیخ ک. اگر شیخ میومد برای ما بهتر این نسخه شناسی رو میکرد مشکل حل می‌شد سپانه ما احتمالی که قدی می‌بینیم که این دو نسخه بوده ولی البته اصلا هر دو احمدی. و از کلمیه وقتیان بعضی از مشایخ ما احتمال دادن که اگر شیخ به اسم مثلا احمد می‌کنه تعابیرش مختلف اختلاف تعبیرش ناشی از اختلاف مصدره من توضیحاً صادقانه عرض کردم این طور مشهوره در الفنی اسا اگر ابتدا کرد به اسم کسی از کتاب اونه مثلا افشا کرد به اسم احمد بن محمد از کتاب اونه کتابونه مثلا این مطلب واقعا نداره اینکه باطله این مطلب باطله رو خیلی مشهوره همه نوشتن خب این مطلب اساس نداره لکن این هست که تشخیص اون مصدر دقیق هم خالی از اشکال نیست حالا من توضیحا رو ارز میکنم شیخ توسیه حسر اینکه که در مشیخه آمده البته در مشیخه یک جا نیامده متفرق آمده لذا اصحاب تعمل نکردن اون اول مشیخه ریزن تا آخر مشیخه دقت قد نکرد مجموعا در باره احمد بن محمد بن ایسای اشعری قومی از اول مشیخه تا آخر روایاتی رو که از احمد نقل میکنه از پنج محضره یکی نیستم این ها ذهنشون این ها از خود صاحب حدایه ذهنشون این که اما از کتاب احمده. چون به اسمش کرده باید چرا اینطور خرابی عوردش نه شیخ از مجموعه کلمات ایشان در, تحضی... در مشیخه تحضیل یا استفسار یکیه در مشیخه یا مشیخه مجموعاً از احمد پنج مستر نقل میکنه البته این هست در اون نقلی که در مشیخه یا مشیخ آمده دو تا تعبیر داره در بعض جا احمد بن محمد ابن عیسی داره بعض جا احمد بن محمد داره. تو خود مشیخه لذا بعض از بزرگان احتمال دادن که شیخ کاملا دقت کرده اگر با این تعبیر از این کتابات اگر با این تعبیر از این کتاب روشن نیست که شما من اینو این بعضی میفرون مقدمات و مؤخرات داره جاش اینجوری سوال نمیشه اما این حث اجماله مثلا شیخ پنج مورد از احمد در کرده بولند درست که بارنده بولنگو دو موردش احمد دو محمده حالا درست نشد نه اونجا باشه فیش اونجا در دو مورد ایشان تعبیر به هر سه میسمش میشه در دو مورد تعبیر ایشان احمد بن محمد سه مورد تابیر ایشان احمد بن محمد ابن ایساس این هست باست. در این پنج مورد در دو موردش احمد بن محمد پنج مورد سه موردش احمد ابن محمد ابن ایساس و من ما به ذهن خود وما میاد که واقعا این مطلب درست باشه و در این مقدار ما شاندشیخ را عجل این دفاع هست من این وقتی که عرض کردم اولین باری که در میراث های حدیثی ما این بحث آمد که شیخ متون و اسانید روایات رو خلل ایجاد کرده شهید سانیز این به لحاظ تاریخی عرض بکنم ما قبل از شهید سانیز مثلا ما علامه رو که داریم علامه احادیث رو فقط در تهذیب نمیشه از کافی هم نقل نمیکنه خیلی عجیبه و لذا کردیم بعد جا الانگه حدیث ضعیفه چون در تحضیح سنیم ضعیفه همونو باید در کافی دستن سعیه هست ایشونو حکم به سرحتش نکرده این که از شالاته حالا این چطور شد امر بعد شد یه مدد که اصحاب کارشون فقط روی تحضیح بود شهید سانی در درایه میگه شیخ اختلاف برگاهی در حدیث این رو به این صورت خیلی شدیدش نمید. این یواشا باش دیگه بعد سر ایشان در منتق مجما موارد اختلاف متون و اسانید مطرح کرده تا زمان صاحب حداونت دیگه یه مقداری همه علمای اون تو این خط نبودن یه مقداری ننه صاحب حدامون عبارت سنگین رو آورده که خون نظری چون هر استاد هم در مقدمات موجع در بحث ترجیه عبارت حساب رو حلاقه آوردن البته من چند بار ارقم این وقت چند بار گفتم این مرحوم استاد دو بار تجشنه بیش از دو و خیلی از جای حدا چند جا ماند و ایشون هم استاد قبولی فرمودن که بله شیخ از این دور چیزا داره اینا به خاطر اشتغال شیخ مرجعیتو بعد دیگه سر شیخ رضا شروع بوده این خرابی ها پیش اومده اینا روشن نیست این مساله بده استاد روشن مرقوم ساغ داره حز این اختلاف هست این تغییر فنی داره به ذهن ما اینطور میاد که مرحوم شیخ چون خودش تصویر میکنه در کتاب به اصطلاح مشیخه که من مجموعه یه که از احمد اشعری میگم از پنج مستره خوب دقت کنیم و پنج مسترش هم متفاوتن لذا نمیشه این اشکال بشه افتیات تو تصریف کردی تحریف کردی زیاده و نقیزه حالا مثلا راجع به همین عنوان احمد و محمد و محمد و تصاداته عجیبتر اینه که این پنج مسترش بعضی ضعیف هم اصلا بعضی از ها هم گیر کردن که ممکن است مثلا شیخ روی احمد رو ممنونیستان از اون مستر ضعیف این هم داره یعنی چون پنج تا مستر مختلف پنج حکم هم دارن نه که همه شون یکی هم مثلا شیخ هست کتاب کافی نهارو کرده تصریح میکنه این سنده سهیده کتاب کافی سنده سهید شیخ از خود نوادر احمد هم نهارو میکنه این سنده زهیده شیخ از کتاب محمد ابن علیان محبوم از ایشان میکنه اونجا هم سهیده اونجا سهیده چون این حدیث الان در کتاب کافی از احمد نیست احتمالی که از کافی باشه منتفی میشه پس میشه دو جای نقل شیخ از دو مصدر دیگه بیشتر کلی کتاب احمدی است کتاب محمدی در محبوب مخرج که به ذهن ما میاد تحریف درست و تحین میراث های ما اینه نه اونرا نش معروف صاحب حدا درسته که اصلا اولش میشی ایدئولوژیشون کردن و استاد هم اجمالا قبول کردن بهش در مثار حدا نه هیچ صدامیش درست نیست این قضیه فقط در امر احمد و محمد ایجاد که دیگران داره احمد و محمد خال 4 مورد داره محمد بن یحیی دو مورد داره علی بن عمر همشون همشون یعنی تو مجلس نقد شده بر تو همشون دیگه یه حدی از تو نیستم احمد بن نیست بوده داره من در اون نسخه تحریری خودم جلد ده تحریری که آخرش مشیخ هست در اولش نسخه خطی خودم دیدم استخراج کردم مواردی که بیش از یک طریق به شخص داره به خصوص احمد بن محمد بن عیسی 5 طریق داره به خصوص عنوان احمد ابن محمد ابن عیسی با این عنوان نه احمد ابن محمد دو دوتاش هم با عنوان احمد ابن محمد اونجا ایک احمد ابن محمد ابن عیساست ایشون سه طریق دارن که چون کافی نیست فرحی کافیه یکی کتاب خود احمده یکی کتاب ابن محبوب محمد ابن علی ابن محبوب به ذهن میاد اینجا از این دو مصدر محقم کرده و به خود کتابشن ضعیف طریق ایش لذا در حقیقت باید گفت که شیخ به ذهن ما اگر این احتمالی که ما میدیم شیخ واقعا هم خب تارفی به چشم احترام بیش نگاه کرده شیخ خب تارفی باید بیشتان میگن این باشه این به عکس تصور شیدستانی یا تصور استاد این ناشی از کمال دقت شیخه خیلی دقیق بود شیخ فوق, فوق اینه که اینا مخوان تصور رو کنید دقیق بوده یعنی شیخ لذان در حقیقت اون چیزی که در کتاب بوده نه ارزنده. بالاخره یکیش غلطه، این ما میدونیم مثلا احتمالاً هم باشه، مثلا احمد بن محمدی از علی بن اسوال به اسحون منصور، احتمالاً اینجور باشه. به هر حال یکیش احتمالاً غلط داره. البته چون حدی از اخباری اونطور بوده، ببین چون در حدیث‌ها هم قبول می‌کنید، گوی از این چیز، گوی بوواسه، گوی بلاواسه. مثلا خوب خلاف ظاهره، انصافاً در اینجا خلاف زاهره. اما این ناشی از کمال دفتری شهیخه البته شیخ هم زعما جوی هم اشتباه داره ما میگم در کل تحریف و استفسار اشتباهی نداره داره مال هم احتمالا باشه اما به هر حال اگر این احتمالی که ما دادیم که چون ایشون در مشیخه پنج در گفته خب ناظر بدینه که اگر شما می‌بینی با هم فرض دارن این سرش سری داره خودش مثلا جو از احمد معماری اینو میکنه در کافی باش فرض داره صاحب هم که چرا کافیه میره در ذهن مولانا، ایشان هرگز شیخ را احمد... چرا با یک اختلاف داره؟ خب قاعده اساسی ایشون سه تا مستر داره برای احمد، یکی یکی کافی، یکی کتاب خودش، یکی کتاب مولانا علی معروف. شاید این دقت شیخ باشه که از احمد کنه از نواظر، مخاطب میگه نواظر با اون چه کافی نرم که بفهمونه. دقتین؟ من ما مناسبه با این که شیخ و ما شیخ و طاهر رو همینه. انصافش مناسب با شیخ خوکت طایفه هم که کمال دقت و مطالت در حدیث و به عبارت اصطلاح امروز در متن حدیث اصلا شیخ دست به تصیح قیاسی نزده بیاست بگه آه در اون کتاب اینجوره در اینجوره این اینا با هم تهم دارن پس این یکی زیادیه یا اینجا واقعه به نیست یا اینجا اینجوری کنیم نه شیخ ما ما هون نقضه هون پس اشکال در هيئت در اون مصدره نه در شهر. این کمال دقت و ظرافت و حساسیت شهر در نقل بیراث اصحاب ما من چون چند بار نمونه های از این بحث رو رفت این خیلی نمونه واضح شد اینجا عنایت یک نه خیر دو مصدره یک کتاب خود نوازی که از اصحاب محمد بن اون هم تازه نواده هستن. کتاب نواده محمد از علی محبزش نواده رو مسنن یا نواده رو کتاب احمد عل نواده از این دو کتاب نه نواده. فرم صریحه این هم مصدر اوقات طرق نه از مصدرونه. لا, لا. علاوه بر اشکال در شیخ نیست. این دقتش شیشه که درس کاری اگر اصطلاح از تفسیر بیاتیه مزد. متنی یعنی کوچولشی نه تقصیر. یه دستکاری بکنید. اینجا هم خب اون مکتی اینجا اون سرنل همون جا هست این کتاب خودش هست این کتاب هست نو باعث می‌گوشه دستکاریش بکنه یکی مثل دیگری بکنه. به نظر من این کمال دقت و زرافت و حساسیت و علم و علم هدیه کام ها داد دینون هنوز رو عنم تأخذون دین اکن. با حدیث که معامله کتاب با ولن امیر ارسلان این دین بود. اینطور نبود که و وقتی کتاب داخ و لذا من فکر میکنم این نهایت دقت مرحوم شیخ قدس الله نفسه بوده که مثل رو همون طور که دیده نقل کرده دستکاری توش نکرده ما این نوبت ماست ممکن ما بگیم آ این مرد علی ابن رشد زیادیه مثلا جوشی جو نیست یا نه این متن درسته اون حالا اون بحث به ما برمیگرده و این یک کار بسیار دقیقیه انصافاً ازده هستن الان این طوری هم دیگه دقیقا اونی که در مرد هست نرمون برزی هم در تصریح قیاسی تو هایچه که میبینیسن میبینیسن مازکرنه ها که مثلا ماجارفی هرد من مثلا فلمرد این تصرف قیاسی ماست و در نسخه اصل این طور. خب چرا تصرف قیاسی بکنیم نسخه اصل بیانیم ما به نظر ما این دقیقت شیخه و تا اونجایی که ما الان حسن میکنیم این دو مست یکیش کتاب نوادر مسنفین محمد نعلیم محبوب و یکی هم نوادر خود احمد البته این هست ای کاش شیخ بیان مصرد می فرمون اون عبارت مجملت تو مشیخه اکتفا نمی اگر این کار کرده نست مثلا اون احمد محمد نیسا فی نوادره این کلمه ما راحت میکرده نبه بحثا دیگری کردیم اگر این کارا می خیلی برای ما بهتر بود چون طریق ایشان هم در نوادر ضعیفه یکی صحیحه ضعیفه الان طبق علم اجمالی هست. ولو الان اصحاب ما برسند خرطا احمد صحیحه لگه این طبق علم اجمالی یکیش کده میگرد اینه کده اونیش از خوب به سه حد به حضر زواهر بسایی رجالی خالی از اشکال نیست اون وقت انه اسمایل بن منصور این اسمال منصور ما نویش به کل مشغوله. و نمیدونیم چی اصلا خیلی عجیب در این وجود ایشان در اینجا خیلی عجیب. چه علیه اصبات ازش نهار کرده باشه چه احمد عشق احتمالا مثلا احمد عشق اگر نهار اجازه یکی برای کتاب میبین بله. خیلی بعید البته آمایان راجع به این حدیث و متون مختلفی که متونش نه اصانید مختلفی که این حدیث داره. میتونم به کتاب اسطا حضرت اسطا عایق خوی در همون جلد سایل منصور جلد سه، اونجا مراجعه کن. همه حدیث آورده عایق و, و همه حدیث همه حدیث من تذکر میکنی و نمیشه در کافی اینجوره، در ترتیب یک موردش اینجوره، در ترتیب یک موردش اینجوره، در این اینجوره و همه نوشته با هم راستند گیش. یکی از اجواء احادیث ما اینه، یکی از اجواء احادیث ما. بعد ایشان مهاست نکردند شما مهاست هم اضافه کرده اید باز مهاست با این فرم حالا Allah عجیب کلیک مهاست دارست سند کلیکی با خود مهاست فرم می‌کند. نیم خیلی عجیب <تصفيق> است. آیا خوب باز مهاست ندستند چیشون باز کتب ارثه؟ اگر شما مهاست هم بهش اضافه کرده از اجایی به کار اینه که این حدیث با این سال در مهاست آمده بعد در کافی آمده کافی از مهاست گذشت مهاست با, با... با کافی فرم بعد در صحیح آمده طریق فقیح باز با, با هر دو فهم می‌کنه بعد در تهذیب در دو تا آمده این دوتاش هم با هم فهم میکنن باز هر دوشون با خود اون یکی دیگه از با اون ستای قبی فهم میکنه. واقعا یکی از احادیث شده سر در نمیاره چیه یک چیزینه این از احادیث ارجبیه غریبه هم. مثلا در کتاب تهذیب در دو مورد دیگه شوج علی هستی هست که شین ولی بعد از او ابراهیم ابن محمد ابن همران هست ابراهیم مساره مثلا ابراهیم ابن, محمد ابن همران در کتاب محاسه نیست کافی جه نیست در تاریخ صلوق هم به محمد ابن همران نیست ابراهیم پسر محمد ابن همران او از در این کتاب هایی گفت داره انعبیح قال عبو عبدالله یعنی ابراهیم از پدرش از امام صادر یعنی در این مسادری که ما داریم محاسن و برقی و دو مورد اینطوره تو فقیل اینجور آمده محمد ابن همران انعبیه همستاده ان تو نیمون که ما سرده نگره این روایت محمد ابن همران نمکره یا پدرش همران نمکره فقط یعنی چهار تا مستری که ما داریم هر چهار تا شو هم مختلف هم حتی دوگاه مثلا فرسان کافی تطریق میکنه همه همه همه همه خاله این تطریق روی که دو برقی گرفته. و من ضمن نام میگه یعنی می‌خواد بگه نسخه‌های مختلفی از آورده. چه معنی چیه؟ خود کافی باز نواحذ ما فرزانه. اینا اصول چیزه چیز که تاریخی هست. یه معما عجیبی صدا سر در نمیاره این چرا این حدیث اینجوری شده؟ عرض کردم استاد خود ایشون هم تشخیص نشون سف. نه حقم با ایشون واقعا تشخیص برام مشکل هست. سر در نمیارم که این چرا این ابهام شدید رو پیدا کردی، اضطراب شدید رو پیدا کرده. در از این اشکال نافی منظورش این حدیث یک مشکل دیگه ای داره که در دو مورد تعلیل از یک مصدر از یک اسم مصدر که دو صفت می‌ذاره ما. از یک اسم با دو صفت آمده این راجع به راجع به اسم علی منصور که در سند شیخ علایین اومده نمی‌شناسید. راجع به ابراهیم پسر محمد بن را نمی‌شناسید. ایشون در مجموعه ای کجوت چطور باید داره؟ اما نمیشناسیم خود محمد ابن همران بحث مفصل داره که بعد عرض کنه این راجع به سندی که در کتاب تحضیم آمده که این مشکل داره البته من اشاره اجمالی میکنم یک محمد ابن هست که از خاندان زراره است به اصطلاح به اصطلاح چون زراره شخصیت بزرگی بود بیگرم خود خانده زراره برادرش 17 نکنن 70 70 70 تا گفته شده و چون زراره از همهشون مشروع تر بود به تمامشون بودن زوراری. یعنی به بچه های و بچه های بکهی و بچه های عبدالملک و قهنب و عبدالعلا و اینا که بختله بودن به همهشون بودن زوراری. این پسر همرانه همران به لحاظت از زراره بالاتره و متکلمه هست خیلی جنگ و کرده این همران جز حوارینه حضر سجابه زراره زمان امام باقر شیعه میشه از سنت بود، از وحر اما همران قبلشه و بسیار همران مرد است. یه رواهیت یعنی منصال چون که وقتان تاون شده در بار همران اینطور طوری چاب شده التر تر همران چیز؟ الفلام تر بلچم تر همران یکی از مقلقات رواهیت که چیو خونده بشه که تر تر همران یعنی شد. تر تر فارسی با یک الول اولشی داخل بشه این مطلب صحیحش از تر رو تر رو همران که این با اینجوری خوبه بشه چون میگم بند نورشته شده به زن به تاق و تشرید را از طر رو طر رو همران طر لفظی که در کوفه استعمال میکردن از کن من که هم کوفیه ها به خاطر اینکه زیادشون ایرانی ها بودن بر اثر فتوین ها خیلی الفاظ فارسی طر به اسطلاف فارسیه نزمان شاهود اون نخی رو که برنامه میگذاره بر و اینکه آجرار درست به چینه اینو به فارس امام صادق می خواهیم شاول شاغول شاغول حمران یعنی حمران مثل یک شاول دقیری اگر اقائدوسون فکرسون حد چیز می خواهیم درست با حمران اندازه بکنی این یک شاغول بسیار دقیریه ما به فارسی فیلمی شاغول از تر رو تر رو این تر رو حمران بسیار مرد بزرگواری وقت پسری به نام محمد هم داره محمد ابن حمرانم نعیم این بهترین مصدر فعلا که در دست ما موجود به خاندان زراره کتابی که ابو غالب نمیشه این ابو غالب از نواده های بکیره و که معدلک به زراری میگفتن این مرحوم از بزرگان بغداد و از مشایق شیعه شیخ مفید شاگرد ایشانه آثار خوبی داره مرحوم نجاشی مزار آثاره ایشان توسیل شیخ مفید نمیم کنه اونجایشون اسم محمد ابن همرانه میبره میگه محمد بن نهمران و علیه السلام در یک نسخه ای اون کتاب ابراهیمه پس میشن در همه نسخه کتاب نیست و صالح ادی ابراهیم بن محمد بحث بحث محمد بن نهمران <تصفح> <تصفح تصفح> <تصفح> <تصفح> بحث مجزا